گلزاده. داستان دختر امواج پریه دریایی که اسمش گالیک یا دوشیزه امواج بود یه صدای شیرین و دلنشین داشت. نصف بدنش به شکل ماهی بود و مانند ماهی آزاد در نور خورشید میدرخشید، و قسمت بالای بدنش شبیه آدم بود. موهای بلند و زیبای مسی رنگ. او وقتی که روی صخری در ساحل دریا به تنهایی می نشست، دوست داشت در حالی که به آینه نقره رنگ خیره میشه، موهای بلندش رو هم شونه کنه و از زیبایی خودش لذت ببره و آواز بخونه. گاهی وقتا شبا زیر نور ما، از پوست خودش بیرون می اومد و لباسی به رنگ آبی دریا می پوشید. در این وقت از هر دختری در روی زمین زیباتر بود. در یه شب زیبای تابستون که باد ملایمی می وزید و ماه با نور نقره‌ای خودش اقیانوس را رو روشن کرده بود، کشاورز جوانی روی سخراها قدم میزد که صدای خنده و آواز شنید. او به آرومی به طرف تخت سنگ رفت و خودش رو از اون تخت بالا کشید بعد از اونجا یه نگاهی به پایین انداخت روی ساحل پوشیده از ماسه های سفید یه دست پریهای دریایی رو دید که دور پریه دریایی زیبایی که از هر فرشته زیباتر بود میرخ سیدن. اونها وقتی از پوست خودشون بیرون اومده بودند و همگی لباس آبی کمرنگ تن داشتند موهای مسی رنگشون پشت گردنشون میلغزید و زیر نور ماه میدرخشید مرد شیفتهٔ آواز و زیبایی اونها شده بود اون به آرومی و بی سر و صدا از تخت سنگ پایین رفت و یکی از پوستای پریان رو برداشت و فرا کرد. پریان تا اونو دیدند با سر و و ترس به این طرف و اون طرف رفتند و به سمت پوستای خودشون دویدند و با سرعت اونا رو پوشیدند و داخل آب دریا پریدند و دیگه از نظر و نگاه ناپدید شده بودند. اما یه پریه دریایی روی ساحل باقی موند. همون پری زیبایی که بقیه پریان دور اون می رخصیدند. پوستش نبود. او نمیتونست به خونه دریایش برگرده. در همین موقع کشاورز به خونه خودش رفت و پوست رو داخل جعبهی پنهون کرد و درش رو قفل کرد و کلیدش رو در جیبش گذاشت. بعد منتظر من تا ببینه چه اتفاقی میافته؟ خیلی انتظار نکشید چون صدای در خونه رو شنید. کسی به آرومی در میزد. اون با سکوتش گوش داد. دوباره صدای درو در شنید و این بار درو در باز کرد. دوشیزه انواج با لباسی به رنگ آبی دریا مقابل او ایستاده بود و موی مسی رنگش در زیر نور ماه می درخشید و اشک تو چشمای آبی رنگش جمع شده بود. با صدای شیرین گفت آقای محترم لطفاً جلد پوستی منو بدید تا بتونم به خونم تو دریا برگردم. اون به قدری زیبا بود که کشاورز نمی حتی تا یه لحظه از کنارش دور بشه. کشاورز گفت من اونو پنهون کردم و به خوبی مراقبش هستم نگران نباش. برشته زیبا اینجا بمونید و با من ازدواج کنید. پری دریایی به ساحل برگشت. مدتی سرگردون اونجا قدم زد و صبح روز بعد دوباره پیش مرد کشاورز اومد و باز مرد کشاورز به او پیشنهاد ازدواج داد. این بار دختر راضی شد و گفت با کاری که شما کردید من نمیتونم به خونه دریاییم برگردم. و باید میون آدما زندگی کنم پس با من مهربون باشید و از اینکه من کییم و از کجا اومدم؟ با کسی حرفی نزنید کشاورز ورز قول داد که راز اونو حفظ کنه اونها همون روز ازدواج کردند همه مردم شهر کوچید اون زن زیوا رو دوست داشتند و از اینکه این زن در میونشون زندگی میکرد خوشحال بودند و فکر میکردند که اون یه شاهزاده خانومی هست که توسط فرشتهها از سرزمین های دور به این شهر آورده شده هفت سال کشاورز و همسرش با خوشحالی با هم زندگی کردند و صاحب دو پسر و یه دختر شدند پریه دریایی بچههاش رو به شدت دوست داشت و به اونها اشقا و علاقه میورزید وقتی سال هفتم به پایان رسید کشاورز به شهر بزرگ رفت تا اونجا کاری انجام بده همسرش که تنها مونده بود بیشتر وقتا به ساحل دریا می رفت و آوازهایی برای دختر کوچیکش می خوند و به دریا خیره می شد یه بعد از ظهر که در میون سخرها قدم می زد پسر بزرگش کیند نزد او اومد و گفت مادر من یک کلید رو پیدا کردم و با اون جعبه پدر رو باز کردم. یه پوست شبیه پوست ماهی اون داخله. اما براختر و زیباتر، و خیلی بزرگتر از پوست ماهی. مادرش از شادی و هیجان، به نفس نفس افتاد. به آرومی گفت میشه کلید رو به من بدی. کینت کلید رو به مادر داد. و مادر اونا تو جیب خودش پنهون کرد و گفت پسرم داره دیر و باید به خونه بریم و شام بخوریم. بعد تو هم برخت خواب بری و یه آوازی برات بخونم تا بتونی بخوابی. بعد شروع به خوندن یه آهنگ شاد کرد و کینت هم خوشحال شد که مادرش دیگه از دوری پدرش ناراحت نیست. اون دست مادرش رو گرفت و همراهش راهی خونه شد. وقتی پسرها شام خوردند و خوابیدند پری دریایی به سرعت دختر کوچولوی خودش را تو گهواره خوابوند و سراغ جعبه رفت و کلید رو از جیبش درآورد و قفل جعبه را باز کرد، پوستی رو که سالیان سال گم سال کرده بود داخل جعبه دید دوست داشت هرچه زودتر به خونه دریاییش برگرده. اما نمیتونست تونست تنها بذاره. مدتی زیاد کنار آتیش نشست. دو دل بود که آیا پوستش رو بپوشه یا اونها رو دوباره داخل جعبه بذاره. همین موقع بود که صدای آوازی از روی امواج شنید. خواهرش داشتند اونو به خونه دعوت میکردند. بعد از شنیدن اون آوازهای شیرین حس کرد که دیگه نمیتونه تو ساحل بمونه و باید به خونه خودش تو دریا برگرده. بعد پسراشو بوسید و کنار گهواره زانو زد. دختر کوچیکش با لبخندی به لب خابیده بود. پریه دریایی آهنگی به عنوان خداحافظی خوند و در همون حال صداهایی رو از دریا شنید که به آرومی و مهربونی اونو به خونه خودش دعوت می کردند مادر دوباره بچه ها رو بوسید. بوست رو به تنگ کرد و به سمت ساحل دوید و داخل آب شد صدای خندهی که از دور و از میون امواج میشنید شنید کم کم ضعیف و ضعیفتر شد تا اینکه که دیگه صدایی به گوش نرسید ماه وسط آسمون بود و نوری اقیانوس پهناور را روشن کرده بود کسی نمی دونست که پری دریایی کجا رفته صبح روز بعد پدر به خونه برگشت بچه ها هنوز تو خوابی خوش بودند که او کینت را پیدا کرد و کینت به پدر گفت کلید را پیدا کرده که جعبش را باز کرده پدر پرسید، حالا کلید کجاست؟ پسر پاسخ داد، اون رو به مادر دادم. کشاورز به سرعت سراغ جعبه رفت. جعبه باز بود و پوستی درون اون نبود. کشاورز وقتی فهمید چه اتفاقی افتاده، از غم و قصه به گری افتاد. میدونست که همسرش رفته و دیگه بر، میگرده شنیده ها از این قراره که میگن مادر گمشده، شده اغلب شبها برمیگرده و به پنجره های که بچه هاش اون اتاق خواب رفته بودند خیره میشه. مقداری ماهی قزلالا و آزاد پشت در برای اون میذاره و پسرا با دیدن ماهی ها تعجب میکنند. و پدرش میگه درسته که مادرتون از اینجا دور شده اما شما رو فراموش نکرده. بچه با التماس میگن میشه دوباره مادر برگرده؟ پدر جواب میده نه مادر شما دیگه بر نمیگرده. او تو خونه خودش میونه مردم خودش زندگی میکنه جایی که من و شما هیچ وقت نمیتونیم به اونجا بریم. وقتی پسرها بزرگ شدند، ماهیگیرانی شجاع و جسور بودند و طوفان هم نمیتونست تونست به اونها بزنه. چون که مادرشون دوشیزه ی کشتی اونها را دنبال میکرد و در مقابل همه خطرها مراقبشون بود. کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی T نقطمی /مهران دوستی T نقط me نشانی وبلاگ ما MEHRAN s t i b l o g f a c o m mehran blogfa com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی